بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد يقول المؤلف رحمه الله وعن ابي بن كعب رضي الله عنه قال عليكم بالسبيل والسنه فانه ليس من عبد على سبيل والسنه ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشيه الله فتمسح النار وليس من عبد على سبيل والسنه ذكر الرحمن فخشعر جلبه من خشة الله الا كان مثله مثل شجرة يبس ورقها فبينما هي كذلك إذ أصابتها الريح فتحاتت عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحاتت عن هذه الشجرة ورقها وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة إنما عبد الله من المبارك ذا كتاب الزهد ذا كتاب الزهد ذا كتاب الزهد ذا كتاب الزهد فدرش این حدیث رو روایت میکنه این اثر رو روایت میکنه از ابو در از ابو مکعن راه خدا راه سنت رو بگیر مسیر من رو قرآن راه خداست راه راست رو بگی قل هذه سبیلی یک راه ادعوا الى الله راه خدا یکیه راه پیامبر سلام دو تا دو تا قل هذه سبیلی ادعوا إلى الله بان هذا الصراط مستقيما و لم یضل چار در قرآن جای دیگه سبُل آمده ان شاء الله بعدش قرائت کردم راه رسیدن به خدا اون شاهراه اصلی یک راه و لا تتبع صبح صبح را جمبست گفت راه های دیگر و را نگی راه اینجا گفت یک راه را, را بگیرید و انها در صراط مستقیمن فتبع یک راه را, را بگیرید صراط مستقیم و لا تتبع صبح راه های گمراهی را نگیرید اونجا گفت یک راه اینجا گفت راه ها در نقض این آیه عبدالکرین سروش مقاله داره به اسم ترات مستقیم خدا میگه ان هاذا صراط مستقیما یک راه مستقیم میگه نسرااتای مستقیم صراط یکیه یک راه اهدنا الصراط المستقیم راه مستقیم یک راه مستقیم دو راه نیست صراط الذین اون راهی که راه کسانی بود که نعمت خدا بر بود از شهدا و صالحین و انبیا صالحین پس اینجا توصیه به کعب چی هست میگه بچسبین که اهل سنت باشه و اهل قرآن و سنت باشه از خدا بترسه عشق از ششهاتش بیاد بعد در روز قیامت عذاب ببینه کسی نیست که اهل سنت باشه و یاد خدا بیاد پوستش و بدنش به تکان در بیاد مثل مثال یک درختی که برقش خوش شده بعد بادی بیاد اون اوراقش بریزن مگر این که مثل مثاله اینکه شخصی که اهل خداست و اهل عبادته و اهل تمسکه به قرآن و سنت اینکه گناهانش ریخته بشه در مقابل مسیبت ها بقاطر چی؟ خاطر فضیلت چی؟ تمسکش به قرآن و سنت یعنی اسلام یعنی اینجا با این اثر میخواد تعریف از اسلام بکنه این دینه عند الله الاسلام یا اون رضید ذکب الاسلام دینه اون اسلام میخواد تعریف بکنه اسلام چیه؟ راه چیه؟ راه خدا و سنت راه قرآن و سنت. این راهو اگر گرفتی از فضیلتا شیه تکویره گناهان که در حدیث در آی قران قبلا بهش اشارش میگه اقتصاد و اکتفا کردن بر سنت بهتر از اجتهاد بر خلاف اون تو اجتهاد میکنی از رأی خودش از فکر خودت بدون اینکه دلیلی از قران و سنت داشته باشی با فکر خودت یا اینکه از دو حالت داری یا اینکه الهامی از طرف خدا میشی الله بنده ای خدا هستی خدا به این توفیق رو بده یا اینکه بنده بردزیده شده یه شیطان ابلیسی و این الشیاطین لا يوسنون الی اولیاهم از این حالت کاری نیست یا عبد خدا یا عبد شیطان خیلی اعتماد به نفس خودی خیلی قوز خود ایمان تقوی میبینید از اثرات خدا الهام میشه حال از اثرات معلوم که ابلیس بر ما الهام نکنه چون احتمال از ابلیس الهام بالفرض و بنده صالح ولی آيا ما میتونیم یقین داشته باشیم که این الهامی که به ما میشه از طرف خداست است نه از طرف خدا، نه از طرف شیطان این مثال رو من چرا زدم؟ چون اهل تصوف میگن چی؟ دین با سلیقه است، دین با کشف دین با خوابه من توی خواب رسول الله را دیدم که بله تو گفت کتاب برزندی رو تو مولودی بخونید و خودش کتاب رو بهش دادم خوند همین حضرمی میگه دیگه در سجیلت کتاب برزنجی میگه تو خواب دیدم پیامبر برزنجی رو از من گرفت خون و بعد گفت خیلی کتاب خوبی است سبحان الله رسول سواد نداش که بکنه چطور خون تو خوابت بعد چطور داره این کتاب تحسین میکنه کتاب الافراط شرکیات و بدعت ها و خرافات و آیا ما دینمون رو نقاب میگی از کجا معلومه که شیطان تو خوابش نیومده میگه پیامبر خدا بود که تشخیص بده این الهام از خداست یا خدا در قران میگه شیاطین الهام میکنن و ان رجیاطینا لا یحون الی کجا معلوم؟ محضر تشریع محضر دین چیه؟ قرآن و سنت و حدیه سلف امت صحابه رسوله گفتیم که با فهم اونها قرآن نازل شده اونها فهمیدن نه با فهم جدید و مخترعی از طرف خودمون اونها از رخ و چه فهمیدن؟ اونها از رکوع رفتن چه فهمیدن؟ نه اینکه که رسوله صلی اللہ علیه وسلم بیاد بهشون بگه رکوع بکنید یادم بهشون بده رکوع بعد اون شخص رقی اثر که فرض اختراع بکنه بگه که من نه رکوع اینطوری نمیرم به طوری دیگه میرم به جای رکوع مثلا سجده میگه نماز جدید از فرقی شخص اختراع بکنه قابل قبوله میگه نماز میخونم ولی نه به جای رکوع بار مثلا ده بار میرم قبوله؟ نه قبول نیست حالا, حالا شما قبول کردید که در امور تعبدی زیادت و اضافه قابل قبول نیست یک رکوع رو نه با در رکوع بکنیم قبول؟ یا نه در اندیشه وفد چطور؟ خدا گفت ایمانه به من این شرطه شروع بشه ایمان به ملائکه این شرطه شروع بشه ایمان به قضا و قدر و روز آخرت و غیر یک شخصی بیاد بگه من نه ایمانه به قضا و قدر صرفه منهج ارسطو و نیچه و شوپنهاور و ارسطو یاوس و اینا و ابن سینا قبول دارن نه بر منهج سلاف نه بر منهج که صحابه فهمیدن و پیان صلوات الله گفته من اون منهجو قبول ندارم این منهجو قبول دارم وقتی که مسئله خلق قرآن شد کلی مسئله خلق قرآن شد گفتن قرآن مخلوقه یک از علما وقتی که این فتن شد در زمان ما محمد در بحث مناظره با بشری مریسی شخصی که باش مناظره میکرد عزیز من یحیل کنانی باش مناظره میکرد یک از اشخاص اون بود گفت که اول تو شروع میکنی اول من شروع بکنم بشری مریسی گفت نه تو شروع کن و گفت باشت من شروع میکنم سوال اول این حرفی که تو میزنی این فکر و اندیشه که تو میگی قرآن مخلوقه آیا حرفی زده؟ و صحابه در حضور پیامبر چنین حرفی زدند این مسئله خلق قرآن در زمان پیامبر (ص) وجود داشت گفت که این مساله رو جواب نمیدم به معنا دارم میگم مساله رو جواب نمیدم یک سال دیگه مطرح بگو اون عالم دوباره سوالم توری دیگه مطرح میکنه میگه این حرفی که تو میزنی که قرآن مخلوق ابوبکر صدیق دعوا داد مردم به این که گفت اگر قرآن مخلوق نیست بگید شما مخلوق نیست شما رو خلق میزنم زنده میکنم آیا این چنین کار ابوبکر صدیق کرد با مسلمانان و میدادن دیگه محمد شد الله خوردندون افتاد بقاطر همین ممانعتش از اینکه که بگه قرآن مخلوقه این لازمه یه ای کلام در خدا جست بودنه و اینکه که جست حدوثه بعد سر سال حوادث تو کلام میاد آیا این حرفا را عمر ابن خطاب زد عثمان زد علی زد جواب نه هیچ کدوم نه نه پیانبر خدا نه خلافا راشدی و نه بعد از اونها بل صحابي رسول الله صح عبد الله بحث لحظه وقتي و قدر شد وقتي معبد جوهني وما گفت علم حادثه خدا نميدونه از قبل چی داره علم صابق خدا رو نفي علم غيب خدا رو و لوح محفوظ رو و آیات قرآنی كه صریحا ميشه في في امام مبين آيات صریحي كده در لا لوح ما را انکار كرد اولين چيزي ابن عمر گفت چی گفت اعلامهم اني بريء منهم وانهم براؤه ميني من باريام من هو از مريا انها از ما از تي از كساني كه رهرو راه الله صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيل ادعو الى على بصيره وانا من اتبعني چرا چون امشيدم كه پدرم گفت يا جبريل و مع زانو بزنم رسول الله صلى الله عليه وسلم نشات سوال پرسيد از اسلام سوال پر از ایمان در ایمان چی گفت انتمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره تا وقتي كه شخص تا وقت ایمان نیار شخص مؤمن نیست اینو قضا و قدر از خدا نفی کردن گفت نه خدا نمیدونه اینجا هست که امام عبد الکنانی وقتی که بهش میگه میگه که جلوی خلیفه عباسی که بود گفت که چیزی که رسول خدا دعوت نداده ابوبکر دعوت نداره عثمان دعوت نداده عمر دعوت نداده علی دعوت نداده منم صحابه اونها نفهمیدن تو فهمیدی دعوت میری اونها جاهل بودن تو دانایی به به این نقض چیه اقمتم علیکم نعمه میگه خدا اتمام کردن میگه نه ناقصه اونا نفهمیدم من فهمیدم باور بکنید خیلی از این اشخاصی که در انحراف میافتن خودشونو از رسول الله صلی الله علیه و الیهم بالاتر میدونن یعنی قد کفر و زندقه بهشون رطیره در فن و در دارک و در اندیشه و در فکر خودشونو برتر از رسول الله صلی الله علیه و میدونن میگه اون چیزی که من فهمیدم بهتر از این حدیث رسول الله مثلا معتدله که چی مسخره کردن به حدیث افتادن پشه تو آب بیانبه اصلا هم گفته که این پشه تو آب بزنید چه کثیفیه 1400 سال ما اهل سنت مذخره میشیدیم از توبسط این اندیشنگران به قول خودشون رو مفکرین بر این کچی؟ این دین دین کثیفیه که پشه رو تو آب بزنید دیرون بیارید ولی الان کش شد که نه پشه یک بالش زهره یک بالش زهره یکی بیوتیکه یکی آنتی بیوتی بیوتیکه یکی سمه یکی پادزهر پاد سمه میاد تو سم الان دارم ضررو از, از بال پشه تولید می کنمم ولی اون موقع رسول الله نگفت که حتما این کار بکنه آب نداشتی آبت لازم داشتی پشه در افتاد این کارو بکن تا اون مشکل از بین بره این معجزه بود ولی اونها به چشم نندی و زشتی به این حدیث نگاه میکردن و زشت می ساختن اهل سنت و سق صل ها رو نگاه کنید اشخاص عقب افتاده و عقب نگر و کوته فکر که اندیشه و فکر و ادب و رفتار و مرام ندارن چیزی از این جز همین تا حدیث ساده ندارن این احادث ساده نگاه میکردن ولی که الان موجزه ازش بیرون میاد چه چی چیز سبب شد که این شخص بیاد این حدیث را این کار بکنه بر تری دونستن فکر اندیشه خودش بر فکر اندیشه رسول الله صلی اللہ علیه وسلم ما دینیمون کامل نمیشه جز با اون اندیشهی که رسول الله صلی اللہ علیه و داشت با فکری که رسول صلی اللہ علیه و چون خداوند او را انتخاب کرده چون برگزیده شده است از طرف خداوند چون خیر البشر چون سید الانبیاست خداوند من برای ابلاغ و اتمام وحیش بهترین ها از بندگانش انتخاب کرد هیچ کسی با تر از رسول الله نیست هیچ کسی مفکر تر از رسول الله نیست هیچ کسی اخترفتر از رسول الله نیست هیچ کسی با ادبتر از رسول الله نیست انی اتقاكم لله و اقواتر از رسول و سلم کسی نیست اینو باید همیشه تو ذهنادت باشه ما نمیدونیم مدرس با صلی الله علیه و بهتر بفهمید از این اصل بزرگی از اصل دین اقتصاد و اکتفا به قرآن و سنت بهتر از اجتهاد بر خلاف قران و سنت انسان بیاد با رأی خودش یه چیزی را بر خلاف قران و سنت ترجیح بده عبرت به درستی اعمال نه به زیادی اعمال عبرت به کیفیت نا كميات ليبلوكم ايكم احسن عمل خدا امتحون میکنه که ما کوم يك اعمالمون بهتره ليبلوكم ايكم احسن عمل خدا نگاه به بهترین بهتر بو بودنه عمل خدا اول میکنه نه نگاه به چقدر عمل كردي همون تو در حديث داشتين كه اسلام بين است و مغرب كمه كمم انسان ميتونه عمل انجام بده ولي این عمل نزد خداوند مقبول تره به دو تا قیاد قداش داشت عبرت به بیشتر بودن نیست عبرت به کیفیت عبرت به اینه که تو چی داری انجام میدی و چرا داری انجام میدی آیا از باب تخلیل یا اتباع و پیروی از رسول الله صلی اللہ علیه وسلم پس انسان نباید به کثرت عمل خودش به اون نماز تحدود عبادتش به زیادی اعمالش مغرور بشه اون چیزی که نزد خداوند قابل قبوله؟ اون عملی هست که خشوعانه خالصانه برای خدا بوده و اون عملی که صادق بوده برای خداوند اگر کثرت نیک خوب بود باید خداوند برای خوارج و رسول الله صلوات علیهم برای خوارج میپسندی خوارج رسول الله صلی الله علیه و سلم در وصف اونها میگه یحقر احدکم صلاته و معاصاته نماز قوتورا در مقابل نماز اونها تحقیر می کنه که نماز می روزه می گیرن تهجد می ولی کن چی ولكن هدي انه روش انه برسلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم انه بقمره ربته نبراه هدوية وان عمله بسيارة شجون بذارد شرنافر يمركون من الاسلام كما يمرق السهو من الرمية بسرعة الاسلام خارج فقط اي شيء ظاهري هذا الاسلام يفهم بعمق الاسلام بين مثل ومسك صانيك حكام و تاكثير ميكونا بواته في المدين قدوان فلا, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم در صورت که این آیه در صحابه بدریه که به اتفاق اینجا نفی کمال ایمان نفی است ولی کن طرف نه, نه. اینجا گفته خدا ایمان ندارد یعنی خلاص کافره نمیتونه تشخیص بده چرا نمیتونه تشخیص بده چون فقط از اسلام ظاهر فهمیده عمق مسئله نگاه نکرده سبب نزولش چیه چرا نازل شده در چه کی نازل شده علما چی برداشت کردن استنباط علما توجهی نداشته خیلی مهمه برای اینکه نجات بیابیم از این گمراهی مغرور نشیم به اون عبادت من یا به اون زهد من و این مسئله هم پیش میاده به این گمراهی شاید ما در خودمون من در کسی دیگه برای ما تلقیم بشه فلان عالم آلبانی عالم ده بود این قد تهجب میخود این قد فلانه من مثال آلبانی دارم میزنم شخص شاید اعتقادش در آلبانی و تعصبش در آلبانی او را از حقیقت کور بکنه آلبانی مثال بود از یک شخصی که پایبند به سنت بود این شخصی که اینقدر داد به شیخ ابن میگه مجدد عصرت شاید تعصب به آلبانی تو را کور بکنه از حقیقت یافتن از باب اولا غیر آلبانی کسانی که در این عصر عصرن تعصب به آلبانی تو را کور میکنه از حقیقت از باب اولا غیر آلبانی تو متاثر شدی یک شخص تعصب تو نسبت به اون رفتارش نمازی که دیدی من جوهری از من صلاح دیدی خوبی دیدی نماز دیدی دی رفتار خوب دیدی دی این رفتار خوب من سبب اعجاب تو به من شد و این عجب تو سبب شد که بله هرچی جوهری میگه درسته این ابتدای راه انحرافه این ابتدای چیه؟ راه انحرافه چرا؟ چون هدی و هدایت را در قرآن و سنت ندیدی در شخص دیدی دی عبرت قرآن و سنت نه عبرت به شخص کل یکت و یصیب الا صاحب هذا ابراهیم تامل می کنه هر حرکتش ادعای بکنه الا صاحب قبل متعصب نشو نسبت تا اینکه از تدیلت های اسلام بهرونش چون اقتنا و اکتفا و اکتفای ما یک فرد ما را کور میکنه از هواد حقیقی اسلام حق را در اون شخص خلاص نمی بینید و خودمو علم خودم رو محدود به اون شخص محدود میکنید اون شخص علم محدودی داره چه قسمت علوم هست که خداوند رب حامل فقه الى من هو افقه منه حامل فقه ایش به شخص فقيه تا شو وجود داره و شاید تو هم بهتر از اون بفهمی مغرور باش به فکر اندیشه خودش نه با ادواتش با alatash با قران و سنت با اون علومی که خدا در اختیارش قرار داده انسان میتونه به این قال عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال يا حبذا يوم الاكياس وافطارهم كيف يُربنون سهر الحنقه وصومهم ولم يقالوا ذره من ذر مع التقوى ويقين اعظم وافضل وارجح من امثال الجبال عباده من المقتدرين قام تكميل بحثه قبيله ديش خوبه و راه کساني كه اهل زكاوات واهل خرد و درك بودند و اکتفا كردند به شرح دي شرع الدين به ان يك ذره با مثال و مثل اون کسان نبودند تهجد واهل قيام و اهل روزه شدن ولیکن چی؟ ولیکن مغرور به خودشون شدن، معجر به خودشون شدن و در فریفته خودشون شدن و در گمراهی افتادن یک مثال، یک ذره با تقوی و یقین بهتر از کرمن نیکی که تو داشته باشی ولی ولیکن با اخلاص و با متابعت و با پیربی از رسول الله صلی اللہ علیه وسلم نباشه قالبابا وجوب دخول فلسلام و قوله ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في من القاصرين خب ما گفتیه از اونجا فزیلت این برداشت میشه که فاضل محسوله دین اسلام فزیلت داره خب در این نیست که غیر دین اسلام فزیلت نداره میتونم دین دیگر رو اختیار بکنه اینجا این حدیث ادامه اون باب آورد بر اینکه این دیگه اختیاری نیست که من مسلمان بشم یا ما باید مسلمان بشید ومن يبتغي غير الإسلام لدينا فلن يقبل ديني شمار والقوت أنت خبكنين غير الدين الإسلام فلن يقبل منه وهو في الآخرات من الخاسرين لذلك الآخرتا جزء كثانيا سنك دار قصرانه زيانا فقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وأن هذا الصراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا الصبل فتفرق بكم عن سبيله قال مجاهد السب دع شبهات ان سبیراه های گمرراهی راه شبهات و راه گمرراهی است. پس الآن دینی که خداوند برای انتخابات دین اسلام دی اسلام هم دیین تمامی پیان برام بوده. ایسان نصری بود به ودی موسی یهودی بود دینه هایی که به یهودیت انحراف یافتند شدن دینه غیر از اسلام بهخاطر رح خداابشونگی یهودی شددننیش اسلام واقعی نیست. فالان میاد به سماقم المسلمی میاد در بحث ابراهیم اونها میگند ما مؤمنی ولی نمیگم ما مسلمونی یهود میگه ما مؤمنی نمیگه ما مسلمونی مذیطی که در اسلام هست در این اسم حواصل ما کم المسلمی در اسلام مذهطی که در اسلام هست در وجه اشتراک تمامی پیغنبران در این موسلمه هست و در این حقیقت اسلام دار أسولش ندار فروعش أموتك الصلاة صلى الله عليه وسلم فالأنبياء وإخوة لعلاك بردلان بردلان ما دارنا شمت بابتها دين شون يتي الدين واحد دين شون إن الدين عند الله دينهم واحد والدين واحد والشرائع شتاء فروعشون شرعیتشون در نماز نوع نماز خوندن نوع روزه گرفتن داره میکنه ولی اصول دینشون از ایمان به ملازمه و فرشتگان و کتابای الهی و ایمان به قضا و قدر و خدا فرق میکنه اصول دین بین اینها ایمان به معاد و ایمان به نبوت و ایمان به خدا اینها فرقی نمیکنه بین این ادیان یک از اشتباهاتی که ما در نویسندگان داریم میگن که ادیانات سماوی ادیان آسمانی اشتباهه یا ادیان الهی خدا ادیان نداره خدا یک دین داره ان <سؤال> الدين عند الله الاسلام. وقتان همینجا گفت دین واحد. ادیان نداره خدا، <الدين <داره> <الدين <هاس> نبنسبة خدا دین داره. ادیان هست، ولی نه به نسبت خدا، نه نسبت آسمانی از طرف <التراف> خدا. از طرف <يك> خدا یک دین بوده. ادیان که به معنای لغویش هست و من یبتغ غیر اسلام الدینان که گفت هر دین و هر شخص بپذیره منظور چیه؟ اون شخصی که اون دین رو بر خودش تکلیف سر غیر از دین خدا، فلن يقبل به. کسی غیر از دین اسلام دین دیگه رو به سند خداش نمیپذیره. پس دینِ که خدا پسندیده برای ما چیه؟ دین اسلام که دین تمامی پیامبران خدا بوده. دین پیامبران خداوند مثلا ابراهیم دارین. قطتا كانت لكم قسوه حسنة في ابراهيم والذين معه القوا لقومهم انا برااء منكم ومما تعبدون من دون الله. مسئله هات اینجا میزنه از دین حنفیه ابراهیم. کسانی س این پامبران مثل ابراهيم که بودن گفتم بقومامشون که بح دين اسلام دين حنت ابراهيم عليه اسلام كانت ال أثبت كلألبينكي هست در دينش براهيم برای ما. اندين الشبوط قال القوم إن براء منكم از شما منكم ومنما از خودتون بعد شلتته. بعضان نه ما خودشون کارها داریم ما. براءت اعمال اعمالشون میگیم نه جاهایی میشه علاوه ملزم میشه از خود اهل بدعت و اهل فسق و فجور بشي متبرئ بشی نه که تنها از عملشون این حب و بغض فی اللهی الحب و البغض فی الله اوثق عل الايمان که این حدیث که در تایید این آیه که آیه در تایید این حدیث است الله الله علیه حب و بغض بالاترین مسائل ایمانه که ایمان محکم بکنه الحب والبغض يك شخص بغض اشتريه بنسبة بلعتش بنسبة گناهش بنسبة شركش تاقيام ساعتها الحب في الله والبغض لله دوست اشتريم شون اهل السنة اهل راه رسول الله صلى الله اهل دينه دوست اشتريم الحب في الله والبغض في الله دين ابراهيم عليه السلام ديني ك دراج فرصده شده مجوب تسليم أمر خدا ومجوب مسلمان شدن براعت شرك و مشركين باعت براعت از تو باغر از ولا و برا دین اسلام پذیرفته نمیشه باید ولا برادری ولا یعنی دوست داشتن باید اسلام رو دوست داشته باشی واجبه بر تو اسلام رو بپذیری و واجبه بر تو چی بر خودت حرام بکنی دیگه ادیان براعت از دیگر به اسلامی که خدا تعریف میکنه از کی از ابراهیم تعریفی که خدا از اسلام ابراهیم داره ان براءه منكم و مما تعبدون من دون الله ثن ودي و هو فی الاخره بزرگ хаторат хасарат чие? хасарат беиштовада ва. худадон дар куран мегӯй: биҳрам Аллаҳ алайҳим аз жанна. уқобатасани ки дучаре ширк-и ақбар ва و и ақбар шуда. хасарат абадӣ. ва шаод ам хасарат ҷузъӣ باشه. шаод кӯлли, хуллан тафсрона зиён бошад? ҳамин фармулиё худадон ба мансаи ғайри исломидӣ, фалан юқбала мин адуш базирофта намеши. ва ҳафал ахиратан аз ал و خسارتش ابدیه خالد مخلد در جهنم چی میخواد در یک جزئیاتی بدعتی در دین بیاره نوآوری در دین بیاره بخاطر همین الان بحث بدعت میاد بدعت راهی که رسول براش نگوده از ما پذیرفته نمیشه چی میخواد فکر اندیشه چی میخواد عمل باشه دستا رکوع را خداوند از ما نمیپذیره فکر عرسو را خداوند از ما نمیپذیره فلن یخلدنه و هو فی الاخره من الخاسرین در اخرت قسمان زیانی اگر بدعت آوردی باید تابان این خسران زینتو بری به اندازه گناهت عذاب بکشیم مثل همون حدیث که گفتیم شخص عذاب میبینه به اندازه گناهش بس این شرط و جزا کسی غیر از شرطی که خدا گذاشته و عقوبتی که خدا گذاشته کسی غیر از اسلام دین را بپذیه بقید مره بر خودش الزام بکنه خدا ازش نمیپذیره و عقوبتش جهنمه هر چقدر که انسان عماني گفتيم ته زيادي انجام بده مثل حاملت الناس اصلا نارا حاميه من عين اليا جهنميون عاملت الناس انها مخفلي ميگچيدن ميون بدن طواف میکردن مشركين ولي گنجي اخر اشيه اين طواف ها اين نماز در زمان سعيد ابن مسيد بعد از نماز سُنن موسون دو ركعت بولا نماز خون دو ركعت نماز خون دو ركعت بعد دو خبيه چون من گفتم من بده, نماز بده؟, نماز بده؟ تو که وقتی میگی به شخص ولودی بدعت، میگی مگه بده؟ نه صلوات خوبه ولی جاش نیست. اینطوری راه رسولات اصلا روش نبود. اگه ثابت کردی که راه رسول الله بود، اون سر چاش. گفت که نماز بده، دو نه نماز بد نیست ولی چی؟ جاش بده. اینجا رسول الله صلی الله کرده. اینجا جاش نیست. قیام و تهجد خوبه ولی که رسول الله صلی از تا قرار دادن شب جمعه از میان شبها برای تهجد نهی کرده. لا تفصلی ليله الجمعه می قیام شب جمعه را فقط قیامت حاجت تا قرار ندید و لا یوم الجمعة روز جمعه را فقط روزی قرار ندید روز خوبه ولی که روز جمعه چیه بله خدا از تو قبول الان یقبل همین و فی الاخره من السنین خسران دیانی روز آخرت کو چی عقوبتش فقط بدی به خاطر این کاره چ چی, چی سبب میشه که شخص بیاد این گمراهی را به وجود بیاره مولودی رو بیاره یا نمیدونم این شخص بلا نشه تو رو رو کات نماز بخونه چی چی سبب شد که این بدعت بیاد عدم اکتفا به سنت عدم اقتصاد همونطوری که در اثر چقدر اکتفا نمی‌کنه غلو میکنه زیادروی میکنه زیادروی زیاد میخواد این زیادروی ها آخر منجر به تقیان و ظلم و بغی میشه همونطوری که خوارج به طور ظلم و بغ شدند آخرش اومدن نه اسماء رضی الله تعالی و باسم امر به معروف و نهی از به شهادت رسول قال وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بهم عن سبيله إن راه مان مستقيما راه مستقيما راه يجريد راهي قمراهيرا يجريد مجاهد بكي إن راهي قمراهيرا هم الشبهات بدأتها عايش رجل عنها هامي من أحدث في عمرنا رسول الله ناعم كنتم من أحدث في عمرنا ما ليس منه فهو رجل أخرجاه وفي لغض من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وللبخاري اهنبره رضي الله عن قال الرسول صلى كل امتي يدخلون الجنه إلا من ابى قيل ومن ابى قال من طاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى من احدث في أمرنا هذا من احدث في أمرنا هذا امرنا هذا امرجي دين ودنيا مصبر علاش شدي مصبر ماشي شدي اذا ما نسيت بحث دين دنيا نس امرنا هذا اي امر الاسلام من احدث في أمرنا هذا ما ليته من عاد ايش از دین نیست. یه چیزی به اسم دین داو بعد از نماز میخوای بخو تو بلند تو بخو ولی که نگاش تکرار کرده هی دست به دعا برداشتی بر این زن که رسول الله صلی الله علیه و آله این کار انجام داده به اسم سنت این کارو انجام دادیم امام شاطبی میگه میگه این دخول تو در بدعته چون از رسول الله اصلا ثابت نیست که بعد از نماز دستش به دعا بالا کرده از رسول ثابت نیست که برای دعا بعد از نماز دستش بالا کنه استمرار تو و گمانت تو با این نیت و چسبوندن تو به دین که بگی این دین، این سنت دری از درهای باز می دری از درهای بدعت برای تو باز میکنه. من احدثه فی امر نهاده ماله سمنه. از خود دین نیست. اینجا دلالت بر مرد بودن چیه؟ بدعت. من عمل عملا ليس علیه امرونه. اینجا کسی که عملی را انجام بده که امر ما روش نیست. هر چن که معذدش خودش نبوده به وجود آورنده خودش نبوده مثل مولودی اب اونجا من احدث فی امرنا کسی احداث بکنه خب اون احداث کرد به وجود آورد اون عاقبت میشه من که وجود نیوردم ها به مولودی آوردن من که به وجود نیوردم اینجا گفت من کسی که احداث بکنه حالا شخص میاد میگه من که احداث نکردم من دارم فدران من انجام دادم من انجام داد میدم جوابش با کدوم حدیث میبینین من عامل عمل هر کسی عمل بدی انجام داد هر خودشی به وجود آورندش نباشه من عمل عملا, عملا ليس عليه امرنا و هوارت هر کسی عملی انجام به نظر دین که مخالف سنت باشه در حدی از صداف ص الله عليه ووسلم نباشه این دری از در ضرهای بدت را باز کرده دادین. بخواد اون بدد فکری باشه اعتقادی باشه بخواد بگه خدا عل ندارد خدا کلام ندارد چی میخواد هزار نظر درباره خدا باشه؟ چه می‌خواد بدعت‌ها کفری باشه مثل توسل به مرده و کارهایی که رسول انجام نداده و نذر به مرده و ذبح به مرده میخواد این مسائل اعتقادی باشه چه میخواد مسائل عملی باشه مثل یا فکری مثل مثل ارجا و نمی‌دونم تجهم و یا چه میخواد اعمال حالا هر که ما انواع بدعت داریم بدعت اصلی داریم بدعت اضافی داریم بدعت اصلی به معنی که اساسی دلیل نداره مثل مولودی هیچ اساسی دلیل نداره به درصای اضافی داریم اصلش در شهر مثل دعا بدن از اصلش در شهر هست یعنی دعا در شهر هست ولی اینکه جا براش تعیین کردن مشخص کردن و گفتن که این سنت این به نظر ایشون میگن بدعت اضافی اینا به بدعتا امام شافعی رحمه الله در کتاب الاعتصام مفصل پیرامونش صحبت میکنه که اینجا من نمیتونم بحثش باز تا اینکه بحثای دیگه رو Kilo bin tazim. Sallallahu ala ala Muhammedin, ala